بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين واله وصحبه أجمعين اما بعد شي شو درس از دروس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب امام ترمذي رحمه الله واسكنه فسيح جناته من باب هست باب سوم باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنش دي كدر مورد موية رسول الله صلى الله عليه وسلم در أحوادث ما شعر قفتم بشي شعر هم قفتم بشي هم بسكون عين هم بفتحي روي عين هر تا قفتم بشي در لغة عربي 24 وچار حديث امام ترمزي رحمه الله مي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف اذنه خب این حدیث در صحیح مسلم هم هست حدیث از لحاظ اسنادی حدیث صحیحی هست که رسول الله, الله علیه وسلم منجا انس بن مالك رضی الله عنه بس فقط میکنه که تا نصف گوشش بود الله قبلا هم داشتیم در روایت های دیگر تا لاله گوش تا روی شونه هاش و تا می اومد. تا اینشونه هاش یعنی رویشونه هاش میومد تا نزدیکیشونه هاش و تا رویشونه هاش اینا همه در احادیث وارد شده حالا اینجا البته این باب خاص سرار داده ما ترمزی رحمه الله برای وصف موهای رسول الله صلی الله علیه وسلم که تا کجا بوده هر که موهای رسول الله صلی اللہ علیه از وصفش اینه که موهاش زیاد بود یعنی موهاش کم نبود کم پشت نبود پرپشت بود موهای رسول الله علیه و سنت و چه ریشاش و چه موی سرش و اومده تعداد موهای سفیدش که چقدر بوده در احادیث موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و salam کم تر از بیس عدد بوده در روایات دیگر آمده چهارده عدد که الله خواهیم داشت در لا بهلای احادیثی که خواهد آمد و تعداد این موهای سفید را صحابه و دو الله علیهم اجمعین شمردند قسمتی پایین دهانش ریشاش ری و قسمتی میانه چشم و گوشاش و قسمت دیگر فرق سر رسول الله صلی الله علیه و salam از جلو وسط موهاش یک چند تاری بیش نبود از موهای سفید که گاهی دیده میشد و گاهی هم دیده نمی شد به خاطر عمروغنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به موهای خودشون میزدن حالا میاد در ضمن احادیث خب اینجا انس رضی الله عنه بس میکنه میگه شعر شعرو رسول الله صلی الله علیه و سلم الا نصو اذنی موی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا نصف گوشاش بود آیا منافاتی داره با اون احادیثی که قبلا یاد شد روی دوش و یا تا گوش نه رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر موسمی که میومت العمره حج موهاشو میتراشید تیغ میزد بعد موهاش بلند میشد و موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر عمامه بود کم میشد که صحابه بدون عمامه موی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینن رسول الله صلی, اللہ صلی اللہ علیه همیشه عمامه به سر داشت الا اندک جاهایی که اون عمامه را بر می داشت بخاطر همینه که صحابه این مسئله رو سخت می گرفتن پوشوندن سر عبد الله بن عمر رضی الله عنه زی فرزندش رو میبینه در مسجد نماز میخونه بدون اینکه سرشو بپوشونه ناراحت میشه میگه چرا سرتو نپوشوندی میگه سر پوشوندنم سنت مگه بعد عبدالله الله بن عمر رو میکنه میگه قرآن نمیخونیم که بدونی مگر الله جل وعلا در قرآن نگفته خود وزینتکم عند كل مسجد یعنی عند کل صلاه زینت خودتون را رعایت بکنید به هنگام نمازتون مگر رسول الله قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تفسیری از قرآن نبود از همین آیه چطور نماز میخوند؟ آیا گاهی رسول الله صلی اللہ بدون اینکه سرش رو بپوشونه نماز خونده؟ نه هرگز استداله که صحابی عبدالله بن عمره استدلالش به قرآنه گاهی نبوده که نه خودش و نه هم اصحاب یارانش جلوه الله جلاله بیستن بدون اینکه سر رو بکشنه یک حرمتیه یک ادبیه یک زینتیه که الله جل و علیه از مؤمنین خاصه در قرآن خود و زینتکم عند كل مسجد یعنی عند كل صلاح این زینت و این رسول الله صلی الله علیه و سلم مراعات میکردن نه تنها اینا شما در لابلوی بحث خواهد اومد خود موهای خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم شونه می دوغم میزدن میبافتن زیباییه اهمیت بهش میدادن با شلختگیر مخالف بود با جولیدیگی مخالف بود با کسیفی مخالف بود الان میاد در گفتم در ناوله احادیث همه اینها بهش اشاره خواهیم کرد همیشه تمیزی را بهش توصیه میکرد مرتبی را بهش توصیه میکرد زیبایی را بهش توصیه میکرد دعای زیبایی داره میکنه رسول صلی الله علیه وسلم حتی به اصحاب یارانش یک چیز محمودیه یک چیز پسندیده هست در شرم ابن کسی رحمه الله در بدایه و نهایی بعد از اینکه این حادیث را میاره در بحث موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ منافاتی نیست بین این حدیث و دیگر حادیثی که در وصف موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اندازشون اومده چون هر کدوم از اصحاب یاد میکنن اون لحظهی که موی رسول الله صلی الله علیه دیدن ازیر از امامه اون لحظه‌ای که دیدن حالا یکیشون دیده و موخی که موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده بعد از اینکه تراشیده رسیده تا نصف گوشش یکی تا لاله گوشش چیکم تا شونه‌های و دوشش هر کدام یک جای دیدن مثلا میاد در ضمن احادیس اون مهانی میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم موهاشو بافته تا دوششه زمانی که فتح مکه شد همه اینها رو داریم اینها به اعتبار زمان‌های متفاوتی هست که صحابه موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن و هیچ تناقضی بین اونها نیست بالسبع من حديث إمامة المذي رحمه الله وأسكن فسيح جناته من حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة این حدیث را امام ترمذی در کتاب سننش هم روایت کرده. ها اومدن قسمت آخر حدیث را گفتن این زیادی از عبدالرحمن بن نبیزناده در روایت ایشون اومده. گفتن این زیادی هست از تفسیر خودشه. ولی که صحیح اینه که این زیادی زیادی سقه هست و از وصف خود ام البنین عایشه رضی الله عنها و صحیحه. و یک مسئله داریم در دار علم مصطلح حدیث به اسم زیادی ثقه. این زیادی ثقه یعنی این چیزی که در روایت ابن عبیز زناد اومده که در دیگر روایت های اومده این زیادی مقبوله و صحیح نزد علماء. این حدیث صحیحه. حدیثی که اینجا امنون آیشه بس میکنه از غص زدنش با رسول الله صلی اللہ علیه حالا من این در کتاب سرای سعادت اونجا مفصل بحثش کردم از درس هایی که تو این حدیثه. از درسایی که در این روایت اومده بعضیا ایراد میگیرن میگن که خب چرا یه خصوصیتی که امونه عایشه داشته یا کاری که تو خونه کرده را بیاد به ما نقل بکنه چه دلیلی داره که بیاد به ما بگه کاری که کرده خب غسلش زده به رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این که همخوابی داشته با هم دیگر دوش گرفتن خب چه نیاز هست که به ما بگه همین میدونیم که باید بعد از همبستری غسل رو بزنیم خب چه نیازی هست که دیگه اینجا بیاد امونه عایشه این چنینین مسئله را به ما بیان بکنن اولا اومنین عائشه را دیرانها میخواد یک حکم فقهی را به ما بازگو بکنن اینو باید بدونی. یک حکم فقهی سال میشن درسته یک ظرف آبیه یک تشتی در نظر بگیریم از اون آب بر میداشتن. هم با هم هم دیگر اونجا میشستن هم دیگر یا مثلا آبتنی میکردن غسل خودشون و غسل جنابت خودشون انجام بیدادن. خب. آبی که برمیداری با کاسه از تشت احتمال داره از اون آب بدن تو بریزتون تشت آیا اون آب مستعمل آبی که استفاده شده الان آثار بدن تو تو اون آب میریزه آیا خاصیت اون آب از بین میبره؟ آیا درسته که از اون آبی که الان از دستمون از بدنمون از سنمون داره تو اون می ریزه آیا اون آب تغییر درش ایجاد میشه؟ آیا میشه تهارت خودمون با اون آبی که الان داره دست به دست میشه؟ آیا میشه ازش برای غسل استفاده کرد یا نه فقط هر کسی باید از آب خاص خودش از تشت خاص خودش باید دوش میگیره؟امو عشات یانا هم میگه من با تو دست اصلا با همدیگر آب تنی کردیم غسل خودمون رو انجام میدادیم. یک تشت بود یک زرف بود با هم دیگر بر میداشتیم به همدیگر اونجا؟ غسل خودمونو انجام دادیم. و اون آب هیچ تغییر هم پیدا نمی کرد و غسل ما هم هر دوتا صحیح بود اگر صحیح نبود که رسول الله صلی الله علیه که این غسل صحیح نیست بس این کار درسته، صحیحه و هیچ مشکلی نداره آب تغییر پیدا نمی کنه با آثار دست و اون آبی که از تن ما تو اون ظرف میریزه و دوباره ما از اون ظرف استفاده میکنیم خب این حکم فرقیه غیر از این حکم فرقی درس دیگری هم هست نباید از کنار این احادیث رد بشین شما دیدید جوانای امروزمون مبتلا هستن به نگاه به نامحرم لذت بردن از فیلمای جنسی ازدواج کرده ولی چشمش به نامحرمه ازدواج کرده ولی سرش سگرام اینستاگرام و غیره و از برنامه‌ها و از این دختر به اون دختره سیر نمیشه چشاش غریزه است مثل شکم نهار میخوری شام میخوری هی می‌خوای بخوری غریزه است گذاشته گرسنگی الله جل و علا برات چشمم هم در طبیعت و سرشت مردها گذاشته که سیر نشن و این شهوته در ذات مردها هست این چشمها گاهی سیر میشن گاهی گرسنه باقی میمونن چرایی هست برای اینکه این گرسنگی برطرف بشه؟ خب را با این که برای مشکلی نیست نگاه کردن فیلم های مبتذل الوقع براش هم مشکلی نیست، ولی که برای ما مشکله. ما باید دنبال درمان باشیم. خب درمان گذاشته الله جل و برای اینکه ایمانت ناقص نشه، برای اینکه ایمانت کامل بشه، واقعی بمونه وقت حرف الله رو زیر پا نذاری الله جل و علا دستور داده در قرآن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بگو مؤمنین دستور بده که چشرا بپوشنن از نامحرم، نگاه نام نکن. چه زنش؟ نسبت به مرج مردش نسبت به زن خب دستور الله جل و علا. خب این دوست داره این شهوت و غریزه هم درش هست خب چه کار بکنه که این میل پیش نیاد این غریزه به طرف حرام نره با همسرش دوش بگیره نگاه زنش بکنه لذت ببره از زن و همسرش با همدیگر عبتنی بکنن خب این چشمش سیر میشه دلش سیر میشه وقتی که لذت از همسرش برد و یه یک درمانه برای اونایی که مریض القلبن این مریضی هست مریضی فقط جسمانی نیست مرز و درد فقط تو تن و جسمیست بلکه به روح روان ما هم سرایت میکنه فی قلوبهم مرد فزادهم هم الله مرده درباره باره منافقین الله جل و علم دیگه قلبشون مریضه بیماره فزادهم هم الله مرده گاهی تو این نگاه نام احرام کردن هی مریضیت بیشتر میشه درد بیشتر میشه گناه روی گناه میاد دل دیگه از حتی از همسرتم هم میشه از بس که دخترای زیباتر و زیباتر از خانومت می‌بینی دیگه دلت هم نمیگشه که اصلا کنار خانومت بخوابی این هست که اینجا عایشه رضی الله عنها با این کاری که تایید شده از طرف رسول الله صلی الله علیه و داره راهکاری داره نشون امت میده راهکاری داره نشون میده یک علاجه یک درمانه یک پانسمانه برای اون جرحه اینجا داره به ما بازگو میکنه من و رسول الله صلی الله علیه و با هم دیگه هر چی آپتنی می‌کردیم و اصل خودمو را انجام میدادیم از جمله درسایی که تو این حدیثه اینه که چی؟ اینه که زن و مرد باید با این قدر با هم بستگی داشته باشن، اینقدر به هم دیگه نزدیک باشن، اینقدر با هم دیگه راحت باشن. فقط تو اتاق خواب کنار همدیگر نیستن حتی تو حمامم با همدیگر این همه جا با همدیگر باشن کنار همدیگر با هم بشینن نشسته برخواسشون برن بیان این معاشرته معاشرته اینکه مرده یه طرف بخواب بزنه یه طرف بخوابه. مرده چون بی از همسرش میبینه بره با دوست و رفیق وقتشو پر بکنه خانمش از این طرف راهش بکنه رسول الله صلی الله علیه و در زندگی اینطور نبود کنار همسرانش بود باهاشون بود حتی در زدن حتی در آبتنی کردن اینقدر این معاشرت چی بود؟ قوی و محکم بود این پایه زندگیه این یک خانواده محکمه نه سست. این خانواده این زندگی گاهی سست میشه نه بچه حرف گوش میکنه نه همسر حرف گوش میکنه چرا؟ چون ارتباط حسی نیست ارتباط روحی نیست اینها فقط ارتباطات جسمی نیست یعنی با هم دیگر یک جا غسل انجام بدن؟ نه بلکه ارتباط روحیه چش داره سیر میشه اون غریزه داره سیر میشه هم همدیگه رو دارن میبینن و با هم دیگه دارن غسلشون رو انجام میدن خب بس این سه تا درس مهم از غسل انجام دادن نواش به رسول الله صلوات الله وسلم این سه تا درس یادتون باشه مد نظرتون باشه فقط تنها اینجا درس این که رسول الله صلوات الله وسلم مها چطور بود نیست اون یک قسمتی که جزء بابه ولی اون درس دیگر هم مهمه که باید بیش اهمیت بدیم نواد گذرا از کنارش رد بشیم خب بعد از اینکه وضو کرد امه هایشه كنت واغتسل انا ورسول الله ششمینه ای واحد در یک ظرف آب تنی میکردیم یک تشتی یک ظرف بیشتر نبود از همون آب دو نفری غسل خودمون انجام میدادیم یعنی اون آب کفایت میکرد برای هر دو تامون و اون آب هم اگر آثار اون غسلی چیزی از اون آب واردش میشد اون آب هم قابلیت خودش رو از دست نمیداد خب اینه قسمت حدیث قسمت دومش وکن له شعرون رسول الله صحیف fence موداش خوستا گفتیم موهای ریش رسول الله صحیف و سرش پرپشت بود فوق الجمه و دون الوفره اسل جمه انبوه موهای پرپشت زیاد که اینجا مقصد امونی عائشه موهای فراوان رسول الله صلى الله عليه وسلم که اومده روی دوشاش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان له و شعرون فوق جمعه یعنی اساس هم موهاش پایین اومده بود تا روی شونه هاش و دو الفره وفره هم به ب فراوانی میاد زیادی میاد و دو الوافره یعنی پایین تر از چی لاله های گوشش. يعني یعنی ما بین لاله گوش و شانه ها چون گفتیم اساس هم گاهی تا معاضات شانه ها تا نزدیکی شانه هاش میومد دوشش و گاهی روی دوشش میومد و گاهی هم تا لاله گوش و گاه هم بالاتر از لاله گوش وسط سط گوش هاش. این نقل أصحاب رضوان الله عليهم واجمعين نسبة موهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم فس إنجا قم من العائشة فس في موهاي رسول الله رسول الله سلم يكون موهاي رسول الله عن بوه بود زياد بود وإن ترسل أليه قشش بود تنازكي دوشاش مين حديث نمام ترمذي رحمه الله واسكنه فسيح جناته مقويات حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن البراء ابن عاز رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه بس هفتمين حديث حدثنا الإمام رحمه الله من حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة اذنيه طبين خب دول حديث قبلا ياد شد انجا دوبره تكرار شد از وصف اولي رضي الله عنه كي ميگوت كان رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم چارشاني بود بعيدا ما بين المنكبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شانه هاش عريض بود دوشه وكانت جمته جمه موهاس وسموهاي پر ترى صلى الله عليه وسلم كده دار حديث قابريه من معائشه داشتي تضرب الشحم تأودني حديث بعدي حديث قتادة سأناصر رضي الله عنه كم يتسول بورسي كيف كان شعر رسول الله الله عليه وسلم مهاي رسول الله الله عليه وسلم تشجوني بود قال لم بالجعد مهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجده نبود جلده نبود بزبزي زيادة نبود ولا لا بسبطی و نهم رسول الله صلی الله عليه وسلم سیم صاف و لخته ما بین كان یبلغ شعره شحمت اذنیه موهاش موهی رسول الله سسم تا کجا میمد اندازش تا لاله گوش گفتیم حدیث قبلی تا شانه ها اینجا تا لاله گوش و حدیث قبلی تا وسط گوشاش منظور از جمعه هم که دیگه یه همون موهی رسول الله صلی الله عليه وسلم هر کدوم از اصحاب فاسه موها را دارم میکنن در اون حالتی که دیدن اون جایی که دیدن اون زمانی که دیدن 28 امین حدیث امام ترمذی رحمه الله واسکنا فسیح جنات الجنات میگوید حدثنا محمد بن یحیی ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عینه عن ابن ابی نجیح عن مجاهد عن ام هانئ بنت ابی طالب قالت قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم قدمه و له اربع غدائر این حدیث اختلاف بین محدثین در صحت و سقمش بعضیا گفتن صحیح و بعضیا گفتن ضعیف البخاری رحمه الله تصحیحش میکنه امام بخاری یک ارادی میگیره ای که برای من ثابت نیست مجاهد این حدیث را از امهانه شنیده باشه مجاهد سال 21 هجری به دنیا میاد و امهانه هم حالا اسمش گفته شده فاخته هست گفته شده عاتکه و گفته شده هند خواهر علی بن طالبه بعد زنده بوده بعد از خلافت علی بن نبی طالب بعد از اینکه فوت میشه زنده بوده یعنی علی بن نبی طالب هم در سال 40 هجری وفات مییابه یعنی سالی که علی بن نبی طالب فوت میشه مجاهد سنش 19 سالشه تقریبا بعد از اینم امهانی بوده بخاطر همین میگه البانی میگه رحم الله میگه بعید نیست شنیدن مجاهد از امهانی هرچند که امام بخاری میگه بعیده ولی خیلی از محدثین گفتن بعید نیست و این روایت را قبول کردن از مجاهد ام مهانی میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد مکه رسول الله صلی الله علیه و مکه بعد از اینکه هجرت کردند چهار بار رفتن عمره قضا بود برای اول بار دوم دو فتح مکه بود بار سوم سو رفته بودند سلم به جوارانه سه بار عمره داشتند و یک بار هم حج آخریشم حجۃ الوداع سال دهم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه نهم دیگه آخریش دیگه حجه البداعه که حجش که انجام میده برمیگرده وفات میاه سال دهم هجری این چهار بار بود که رسول الله صلی الله علیه و بعد از هجرتش از مکه به مدینه در اون 10 سال رفته بودن به مکه خب امهانی در کجا بود در مکه زمانی که میگه رسول الله صلی علیه اومد بر حین قدومش قدمی رسول الله صلی الله علیه و مکه قدمه یک بار اومدن یکونه دادن اون زمانی که خودش رسول الله را دیده و اماده هم در روايات که رسول الله صلّى زمانی که رفتم به مکه ازش خاصی داریم میکنه بعد آس خای میکنه میگه که من قصه زواج ندارم یعنی عذ میاره بر رسول الله صلّى و سلام هم عزتش قبول میکنه و در بحث پناهشام یه کسی که پناه بده او مهانی مبایش کاری نداره در فتح مکه فزیله برای مهانی یعنی مکان داشت نیست رسول الله صلّى و سلام قاهر علی بن ابی طالب خو خب میگه که زمانی که رسول الله صلّى و سلام اماده به مکه در یکی از اون قدومش در یکی از اون ورودش به مکه یک از اون چار باری که اومدن میگه دیدم رسول صلی سلام علیه وسلم و له اربع غدائر دیدم که رسول صلی موهاش را چار دسته بافته بودن چار دسته بافته بودن چون گفتیم رسول صلی سلام علیه وسلم موهاش پر بود حالا اونجا عمامش رو بر میداره یا از زیر عمامه میبینه الله علم اصل غدائر از غدیره میاد غدیره همون گیسو هست موهای بلند بافته شده ظفیر هم گفته میشه که جمعش ظفائره و عاقائس هم گفته میشه اینا همه اصطلاحاته و اینجا از کلمه قدائر استفاده میکنه اربع قدائر یعنی دسته موهاش را بافته بودند رسول الله صلی الله علیه و وسلم آیا هم الان ما هم خوب موهامون بلند بکنیم ببافیم سنت یعنی این چیزی که الان موهانی نقل میکنه نه عرف جامعه بوده عرف جامعه بوده و مقصزش نبوده مرد موهاش بلند بشه و با... به ببافه ولی الان ما بخوام این کار رو بکنیم زشت میشیم مردم مثلا که نمیدونن این سنته و شاید یک زدگی پیش بیاد اصلا یک دلزدگی سنت پیش بیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض از سنتها را ترک کعبه وقتی که فتح مکه میشه نگاه به کعبه میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیگه به امنوع اوشه میکنه لون ان قومو که حدیث و عهد بالکفر اگر این نبودن به کفر کعبه نبودن خرابش میکردم و دوباره بناش میکردم بر اساس چی ابراهیمیشه؟ اون طوری که ابراهیم ساخته بود این حجر مال جلوش میبینید یه قوس هست بعضیم ها و داستان ها توش میارن که اینجا علی طالب به دنیا اومده و توی کعبه سا این جزء کعبه سا اونجا تفاوت اگر اون چارگوشو در نظر بگیری این نیم قوسو بخوای از این در وارد بیشه از اون در خارج بیشه تفاوت قبول نیستن چون جزء کعبه سا جزء خانه خداس نا علی بن ابی طالب نه هیچ کسی دیگه اونجا به دنیا نمیده. اونجا زایوجگاه نبوده. اونجا خونه کسی نبوده. خونه ی الله جل و علا. اونجا جای مقدسیه. این خرافات ها و این دوستان ها فقط میگم که از این گوش بشنوید از اون گوش دیگه بیرونش بکنید. این چیزا نه صحت داره و نه هم اساس داره. خانه خدا هست. جای مقدسیه. جای عبادت، اطاعت، جای طواف، جای نماز. جای زایمان نیست. اونجا کسی بیاد زایمان بکنه. رسول الله صلی الله علیه و الان یک سنت ابراهیمی رو دارن یاد میکنن سنت ابراهیمی اینه که چی مستطیل شکل بشه نه مربع شکل کامل این کعبه به شکل همون طوری که ابراهیم بنا کرد ولی که رسول الله صلی الله علیه و آله به شکلی که اگر عهدشون به کف نزیک نبود که فکر بکنن من اومدم دین ابراهیمی رو عوض بکنم کعبه رو خراب میکردم دوباره به حالت اولش برمیگردوندم ولی که اینو فکر میکنن من اومدم دین رو عوض بکنم یک سنتی را ترک میکنه از اون سنتی که محموده اساس خونه خدا روش بوده اینجا هست که بعضی از سنت ها ترک کردن به مسلحته. اگر سنت باشه البته این امر امر مباحیه یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی مده بهمون بگه که مو رو بلند بکنید کتاب بکنید فقط یک حالت مو من کرده از حالت قزع قزع چیه مو فرق سر گذاشته بشه به قول و صلاح امروز کپ انگار که یک خوصی گذاشتن روی سر شخص دوربرش رو بتراشه و فقط وسطش رو بلند بکنه فرق سرش رو بلند بکنه این حالته را رسول الله صلی الله علیه و کرده ولی ما غیر اون یعنی غیر از این حالات واضح می خوای تو بلند کنی تیغ بزنی اصلاحش بکنی به دست خودت هر چند که بعضی از علما گفتن اگر موها تو بلند بکنی به قصد اینکه شویه رسول الله صلی الله یعنی مهات مثل مُهی رسول الله صلی الله علیه و سلم بشه مشکلی درش نیست بلکه انسان شاید تو هم معجور باشه ولی اینکه فکر بکنی سنت نه سنت نیست مستحب نیست چون در اون زمان ابو جهل این کارو می‌کرده ابو جهل این کارو می‌کرده یعنی عرف جامعه بوده و دستور داده رسول الله صلی الله علیه و سلم وانه هم من کرده که الا کسی کوتاه بکنه بکنی یا کوتاه نکنه گفتی فقط یک حالتو من کرده و اونم راشیدنه دوربرد سر و گذاشتن وسطش این حالاتو فقط من کردم اما بقیه هم به دست ما رها کرده که ما طبق اون چیزی که مصلحت میدونیم موهای خودمون را اصلاح بکنیم یا الا یا بلندش بکنیم یا اصلاحش بکنیم حالا ان شاء میاد در ضمن احادیث که رسول الله صلی الله علیه و سلام جایی دوست داشتن موافقت داشته باشن با اهل کتاب جایی با مشرکین یعنی جایی رسول الله صلی الله علیه و سلام از بست فرقش میکردن بعد میبافیدند مثل کاری که مشتکی میکردن و گاهی جاها هم رسول الله صلی الله علیه و آله موهاشو به عقب و جایی هم خوب رسول الله صلی الله علیه و آله سرشو تیر میزدن چنانچه در عمرین این کارو میکردند و در حج 29مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبدالله بن المبارک عن معمر عن ثابت بنانی عن انس رضی الله عنه ان شعر رسول الله صلی الله علیه و كان إلى أنصافي وذنيه بظم حديث عن ناسي رضي الله عنك ميقوية از بس في مهي الله صلى الله عليه وسلم از بس في بلندش تو نسف قوشش بوت وذنيه دوتا قوش قفته مشه قوش واد قفته مشه هم دوتا قوش هر دوتا هم صحة داره در لغة عربية سيومين حديث امام ترمذي رحمه الله ميقوية حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبد الله بن عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. من حديث السجه البخاري هم همون بخاري رواد کرده هم امام مسلم حدیث این از لاذ اسنادی صحیحه حدیث صحیحه حدیث عبدالله الله بن عباس رضی الله عنهما که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يسدل شعره موهای خودشون رسول الله صلی الله علیه وسلم رها می کردن به همون حالت خودش رهاش میکردن و کان المشركون يفرقون رؤوسه مشرکین عادتشون اینطوری بود موها فرق می از وسط سر شکافی وسط موهاش نجات میکردن دو طرف می‌انداختن یه فرقی بین اونهاشون ایجاد میکردن از وسط سر پس دو نمونه الان اینجا یاد شد یک نمونه اینکه رسول الله علیه و انجام میداد. ابتدا خصوصا موهاش رو رها میکردن بدون اینکه فرق بذارن و گاهی هم رسول الله صلی الله علیه و آله فرقا همون کاری که مشرکین می‌کردن وكان اهل الكتاب يسلون رؤوسهم اهل کتاب موهاشون همونطوری رها میکردن. حالا یا بعقب می‌بردن یا همینطوری رهاش میکردن بدون اینکه وسطش فرق بذاره بعد میگه انس میگه و کان اهل الكتاب یستلون رؤوسهم و کان یحب موافقت اهل الكتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست داشت که کاری که میکنه کاری باشه که اهل کتاب انجام میدن نه کاری که مشتکین انجام میدن چون اونا با دلیل انجام میدادن. فی ما لامیومار فیه چیزی که هم دستور داده از طرف الله جل و مثلا ریش خب دستور داده شده رسول الله صلی اللہ صرف الله علیه الله که مخالفت بکنه با مجوز وزارت اشتیان. همین دستور میده به صحابش اعفول لها. رش بذارید. امر دستوره. ولی در جایی که امر مباحه، هیچ از طرف الله جللا علیه ماده رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت مثل اهل کتاب موهاش رو همینطوری رها بکنه بدونی که فرق بذاره بدونی که ببافه. مشکلی که عددشون بود که فرق میذاشتن بعد مهاش نمی‌بافتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی این کار انجام میداد. ولی ابتدای امر چه کار میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم مهاش رها مثل اهل کتاب. بعد میگه آنات، توم فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم رأسه. آخر امر رسول الله صلی الله علیه و چی بود اینکه وسط موهاش فرق بذاره و همونطور که مهانی داشتیم حدیث قبلی اومده بود و رسول الله صلی الله علیه و آله هم بافته بود این کاری که مشرکین انجام میدادن یعنی این امر امر مباحیه این امر امر مباحیه و هر کدوم از این کارها را انسان میتونه انجام بده همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله گاهی وسط موهاش فرق میذاشتن و گاهی هم وسط موهاشون فرق نمیذاشتن گاهی موهاشون رو می بافتن و گاهی هم موهاشون نمی بافت این امر به ها شده امر واتهان من حجار میگه این فرق گذاشتن وسط مو میگه آخر امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده اینکه موهاشو به دو طرف بندازه یعنی از وسط نصف کنه از وسط سرش 31 ام این حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المکی عن ابن امين نجيح عن مجاهد عن ام قالت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ظفائرها 4 زائد ضفائر اربع، مثل حدیث قبلی هست این حدیث، حدیث مجاهده از ولی خب با بالفظ دیگر اونجا رو داشتیم اینجا ضفائر داریم همون موهای بافته شده از گیسوها و موهای بافته شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دیدم و موهاش رو بافته بود به چهار دسته دو دسته یک طرف دو دسته هم یه طرف خب این خلاصه ای اون چیزی که در مورد اندازه موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بود چهارمین باب چهارمین باب از ابواب کتاب شمائل رسول الله صلی الله علیه و وسلم از کتاب امام ترمذی رحمه الله واسکه نفسی جنات باب و ما جاء فی ترجل رسول الله صلی الله علیه و وسلم ترجل شونه کردن اهمیت دادن به مو از بارو غن کشیدن با شستن تمیز کردن تمیز کردن و الی آخر اینا همه ضمن اهمیت و اعتناب به موها وارد میشه امام ترمذی اینجا در این باب اعتنا يا رسول الله رسول الله بموهاش انجا هنا حدثك دار بابش امده دار اموزو امده انجا جامع باري ميكون وابا ما باز بميكون سيو مين حدث امام ترمزي رحمه الله ميقول يات حدثنا اسحاق ابن موسى لانصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن انس عن هشام بن عروا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض این حدیث مثل حدیثی که اونجا داشتیم از اون عائشه که غسل خودشون رو برسله صلی اللہ علیه انجام میدادن باز هم در این حدیث درسا هست. یکی از اون درسا بحث خلاف اون چیزی که یهود بشه اتقاد داشتن از اهل کتاب که زن نجس میشه تنش با حیزش با اون عادت ماهیانش قاعدگیش میخواد این حکر رو با ما بیان بکنه که زن نجس نمیشه من قاعده بودم ام من عایشه جنامیگه قائده بودم قائده گی داشته یعنی دوره ما یانه داشته با همون دستای خودش رسول الله صلی الله و شونه میکرد دست به سرش میکشید و موهای رسول الله صلی الله علیه و آله میزد اگر قرار بود دستش نجس بود یا دستش یعنی اون با اون قائده جسمش نجس میشد و هم نجس بود ولی که اون چیزی که در شرع ما هست در دین و دیانت ما هست زن نجس نمیشه در قائده و این حدیث را اینجا به خاطر این حب ام من عایشه برای ما بازگو میکنن من من ماهیین داشتم و موهای رسول الله صلی الله علیه شونه میکردم و دست به سرش میکشیدم حالا غیر از اینکه درسهای دیگه بهمم میده در بحث معاشرت دو تا زوجین با هم دیگر زن و مرد با هم دیگر در منزل چقدر باید با هم دیگه صمیمی باشن امینی و عایشه رضی الله عنها در معاشرت خودش با رسول الله صلی الله علیه و به عنوان یک همسر همسرداری خودش داره با اون بازیگو میکنه دست به سرش میکشید موهاشو شونه میکرد روغن میزد به موهاش اینا اهمیتا این لطفه این محبت این ابراز علاقه هست. اینه که سبب میشه مرد همیشه اون خورشندی و اون خوشدلی و خوشحالیش و خصنا خوشحالی به همسرش، اون احساس آرامش که الله جل و در ازدواج گذاشته، در اون خانواده محکم باقی بمونه و پایدار باقی بمونه و جای برای شیطان نمونه. الله جل و علا قرآن میفرماید و من آیاتی خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة همون مبدت ها که داره عمالی اومن عاشب ما یاد میده. چطور این مبدتی ایجاد بشه؟ حالا یک گوشهش گفتیم اون بحث زدن یک گوشه دیگر اینجا بحث زنه و اون کنار شوهرش بودن. دست به سرش کشیدن. شونه کردن موهاش و الى آخر اینا گفتیم معاشرته. این آداب احکام زندگیه. کنت اراجل و رأس رسول الله صلی الله علیه وسلم. موهای رسول الله صلی الله علیه و آله شو می دست میکشیدن به سر رسول الله صلی الله علیه و آله علاوه کردن و روغن زدن میخواد این حکم رو به ما برسونه که یکی از کارهایی که انجام میداده به رسول الله صلی الله علیه و آله به موهای رسول الله صلی الله علیه و آله بودی رسول الله صلی الله علیه و آله موهاشو همینطوری ول میکرد یا خودش دست به سر خودش میکشید باشونه کردن و زدن و یا همسرانش باید انسان اهمیت بده به موهاش سيو السبومين حديث امام الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن السبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناعة حتى كأن ثوبه ثوب زياد إن حديث دوت الزعف دالشاس حديث زيفي هم دوره با دیگر احادیث صحیح چرا این حدیث ضعیفه؟ اولا در اسناد ربيع ابن صبيح ضعیفه الله بعضی گفتن صدوق و سیول الحفظه خیلی زیاد فراموش میکرده قابل اعتماد نیست چون فراموشیش زیاد بوده. یک علت اولش علت دومش اینی که در اسناد شخصی هست به اسم یزید بن عبان الرقاشی. این هم ضعیفه دو تا ضعیف تو این اسناد داریم مشکل اسنادی داره یه طرف مشکل متنی هم داره مشکل ما اینجا در این حدیث اومده که اناس ابن مالک میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد روغن به سرش میزد که رسول الله صلی الله علیه وسلم یکفر دهن رأسه یعنی زیاد روغن به سرش میزد و تسریح علیهیته شنم میکرد زیاد ریشاش و یکفر القناع از بس که مو به موهاش روغن میزد یک پارچه هم میبس به موهاش که اون روغن از بس که میزد دیگه به لباسش سرازیر وزیر نشه از اون روغن ها حتی که ان ثوبه و ثوب زیات انگار که کسی هست که داره کار تولید روغن رو داره انجام میده یعنی کارش کار روغنه یعنی دست و پنجه با روغن داره نرم میکنه و کل لباسش شده روغنی خب این تعارض داره با دیگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و این قسمت آخرش این خلاف هدیت نبوت این چیزی که در این حدیث ما داریم از حدیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و ما صنان أبي داود داري مس حديثة جوبر رضي الله عنه كيف يقول ياد جوبر ميقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره يك شخص رديد ومهو الجلداز رهو شعره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمودا أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره چیزی نبود که موهاش رو از این جلودگی در بیاره روغنی چیزی موهاش بخوابه و در روایت دیگر داریم جابر میگه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن يدخل احدكم كان الراس و راسه شیطان او و شیطان یکیشم وارد میشه با موهای جلوداش شونه نشودش انگار سرش سر شیطان انگار که شیطان وارد شده و را رجلا آخر اونجا یک شخص دیگه میاد و نواسخه ثياب لباسش کثیف و روغنی بود فقال اما كان هذا يجد ما ان يغسل بثوبه يعني او بنابد لباسشو بشوره نميتوره شو شو تمیز بکنه از اون کثیفی از اون لباس پیرهانی که کسیف شده این چیزی که شاهد در این حدیث در این روایتی که صحیح از جابر در سنن نبی داوود قسمت آخر حدیثه که رسول الله صلی الله علیه و انکار میکنه برای این صحابی با اون لباسش که اومده کسیف بوده روغنی بوده اولی وارد میشه مهاجریده شونه نشده. دومه میاد لباسش روغنی. لباسش کسیفه. رسول الله صلی علیه و انکار میکنه بر هر دو نفر. بس رسول الله علیه و لباسش روغنی نبوده. لباسش کثیف نبوده با اون روغنی که به سرش میزد. و نه هم پارچه خاصی داشته که به سرش ببنده بعد از اینکه معاشو روغن روغم بزنه. این حدیث بس حدیث زیفیه. اینکه انسان موهاش رو بزنه مشکلی در شهر نداره امر مباحیه و اینکه حالا چه روغن بزنه چه نزنه جزء امور مباحه و اینکه پارچه ببنده یا نبنده خصوصا کسی که عمامه میپوشه، اینی که تمیز باشه مهمه الان اون روغنه باشه نباشه اون پارچه باشه یا نباشه مهم تمیزیه مهم از اون ژولیدگی موها بیرون بیان باشونه کردن حالا میخواد با کرم زدن یا با روغان زدن چه تمیزی لباس و چه تمیزی موها هر دوتا تا مهمه و چه از اون شلختگی و جولیدگی در آوردن موها اینها در شرع مهمه که رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا انکار میکنه باید این موهایی که الله جل و علا بهمون داده بهش اهمیت بدیم 34 امین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هناده بن سری قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن, عن عایشه رضی الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمنة في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعى إنك هذا الفوز حديث أم نعى شه سالفة ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمنة في تنعوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله قبل تشيم خادبه من من نعى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمنة في طهوره إذا تطهر رسل الله صلى الله عليه وسلم دوستاش از دست راست شروع بکنه در تهارتش غوصل یا وزو اول دست راست میشهه. اول پای راست میشهه. توره تهارت غسل، اول سمت راست بدن خودشونو میشستن بعد سمت چپ بدن خودشون رو میشستن اول آبی بر سرش میریختن از راست اصلم اچ که در روایت اومده قبل از اونم وزوع میگیر در بعض از روایت آمده تا دست میشستن غیر از پاها که پاهاشون رو آخر غسل میشن حالا البته اینا جز مکملات غسل هست. شرط نیست در غسل این که اول باد وضوی داشته باشیم ولی که جز آداب غسله اگر وضوی بگیری کامل تره. رسول صلی اللہ علیه اول اون شرمگاهشون رو میشستن بعد اعضای وضویشون الا پاها که پاها رو میذاشتن در غسل به آخر غسلشون و روش غسل انجام دادنشون این بود که اول آب روی سرشون بریزن بعد سمت راست بدنشون بشورن بعد سمت چپ و در بوزون هم که خودتون میدونید دیگه دست راست بعد دست چپ و پا همینطور پس رسول الله صلی الله علیه دوست داشت در تهارتش از دست راست شروع کنه و در شونه کردن یا اصلاح سر از دست راست شروع می‌کردن شونه کردن را از دست راست شروع می کرد حتی تیغ زدن با بسم الله از سمت راست شروع می‌کردن این ترجله موها است شونه کردن و اصلاح کردن از دست راست شروعش و فی انتعال هی ایدن در هنگام پوشدن دنپایی دوستاش را سلسلسل اول پای راست را در اون کفش دمپایی فرو ببرن و اول دمپایی را با پای راست بقاو کنن و در بیرون ووردنم اول پای چپ بعد پای راست وارد منزلم که میشدم و سلسلسل اول با پای راست وارد میشدم مسجدم همینطور ولی وقتی خارج میشدم با پای چپ اینا آدابه ها اضافه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون به یاد دادن و الا این زیادی که در روایت بخاری اومده و فی شان کل در همه امورشون اون رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین بود یعنی از طرف راست شروع میکردنی یعنی دوست همه کاراش با راست باشه یعنی چی همه چیز آیا این عموم داره یعنی هر کاری نوشتنم بود با دست راست باشه ساعت پوشیدنم بود با دست راست باشه یا اینکه نه این مسائل رو شامل نمیشه این قسمت از حدیث آیا عمومش اونطوری هست که ما باید برداشت بکنیم در همه امورمون باید اینچنین تطبیق بدیم نه اینطوری نیست که ما در همه امورمون اینچنین باشیم چون خصوصا ها داریم که بیان شد در بحث خارج شدن از مسجد خب با پای شفه همه جا پس رسول الله صلی الله علیه وسلم با پای راست وارد نمی‌شدن و خارج نمی‌شدن خصوصا بحث تفاوتی که بین درسویی می‌ذاشتن و مسجد و خونه و درسویی درسویی رو با پای چپ وارد می‌شدن با چه پای خارج می شدن؟ با پای راست. بر خلاف منزل و مسجد. پس این شعنی کلی عموم نداره در همه امور نیست. در اون اموری که وارد شده به ما گفته شده. خب یک اموری به ما گفته نشده. مصفاق زدن. فقه اختلاف دارن. بعضی میگن چون پاک کردن کسیفیه پا با دست چپ باشه. مثل انسان خودشو پاک میکنه از اجاست پس مصفاق هم با دست چپ باشه. نه اومده رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا توصیه بکنی با دست راست مز... بعضی بعضیا گفتن که نه خوشبوئیه مسواک زدن چون درش خوشبویی دهانه با دست راست باشه یکی خوشبویی رو گرفته یکی پاک کردن اون کثیفی را گرفته این گفته که چون کسیفی پاک میشه با دست چپ باشه میگفت خوشبویی هست با دست راست باشه اینها اجتهاداته خاطر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم امر به کرده اونطوری که خود راحت تاری. ساعتم همین ساعت نبوده اون دوران که مثلا توصیه بشه یا الله دست راست بشه دست چپ بشه اون که خودت راحتی امور مباحه مثل همون بحث موها هست که بلند بکنی یا نکنی امور مباحه ولی اون جاهایی که رسول صلی الله علیه وسلم از دست راست شروع می کردن از طرف راست شروع می کردن چه قص چه لباس پوشیدن چه وارد مسجد شدن چه وارد منزل شدن چه شونه کردن چه اصلاح کردن سر اون جاهایی که وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که از سمت راست شروع کرده بود با اثر چشم بزنیم سنت خوسن بعضی جاها واجبه چنین بعضی اختلاف داره خوسن در خوردن غذا رسول الله صلی الله علیه و سلم سر سفره بودن صحابه با دست چپ می‌خوره میگه با دست راست بخور گفت که نمیتونه لا استطعت ما نمیتونم. قال لا استطعت نتوني هرگز امنتوني مخالفت میکنه با دستور رسول الله و سلم با امر رسول الله و سلم داره بهش میگه با دست راست بخور میگه نمیتونم با دست راست بخورم گفت نتونی دیگه اون صحابی نتون دستشو بالا ببره این شدت مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید در کنار اون چیزایی که وارد شده از رسول الله صلی و سلم که اهمیت بهش میدادن همیشه این کار کارو انجام میدادن خصوصا لفظ کانه رو اونها اینجا استفاده میکنن یعنی همیشه رسول الله الله طهارتشون از سمت راست شروع میکردن هم همیشه هم سرشون از سمت راست شونه می‌کردن اینها آدابه یادم مونده در الله صلی الله علیه و سلم سیو و پنجمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میات حدثنا محمد بن بشار قال حدثني یحیی بن سعید عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قال نهى رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلام عن الترجل الا غباء اینجا این اسناد یک ضعفی درش هست حسان شنیدن حسن از از این صحابی عبدالله بن مغفل و اینجا معناعی کرده خوب یعنی خب بعضی از علمان تحسینش کردن شواهد بر این روایت هست یعنی بر این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم من کرده از شونه کردن موها الا هر از گاهی هر از گاهی یعنی شغل شاغلت نشه مثل بعضی ها هی جلو آینه موهاشون شونه میکنن وسوسه دارن و موهاشون اینور این اینور زیادی کردن در شونه کردن موها رسول الله صلی الله علیه و سلام امرش نبود نهیش کرده بلکه من کرده از اینکه انسان وسواسی داشته باشه در شونه کردن موهاش هی hey, موهاش شونه بکنه هی hey, شونه به دست باشه و سرش شونه بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم من کرده از این کار مگر هر از گاهی یعنی شما موش شونه بکنه همیت بده موهاش ولی هر از گاهی یعنی زیادی دیگه نکنید در اهمیت دادن به مو همیت بدید ولی دیگه زیادی همه امور خوبه که وسط باشه خوبه که وسط باشه زیادروی توش نباشه 36مین حدیث امام ترمذی رحمه الله مجیات حدثنا الحسن بن عرف قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صل الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غيبه این حدیث بازم اسنادش درست زعف هست ولی خب تروخ زیاده یعنی جهالت صحابی هم اینجا هیچ ذره به اسناد وارد نمیکنه رجل من اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم مردی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه هم عدلان که اسمش یاد نشده مشکلی در اسناد ایجاد نمیکنه فقط مشکل اسناد یزید و نبی خالد هست که صدوقه و اشتباه میکنه در بعضی از روایت ولی خب حدیث گفتیم شواهد داره برای خودش که اینجا در این روایت اومده که رسول الله صلی الله و یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم هر از گاهی موهاش رو شونه میکرد و اهمیت به موهاش میداد. داد با شنه کردن و روغن زدن اینطور نبود که همیشه دست به باشه. باشد من همین خد اکتفا میکنیم سبحان الله به حمده سبحان الله به حمده صلی علیه محمد و علیه محمد